هفتمین این روز بود خدا می آسود فارغ از کار آفرینش و شاد از بنای قصر بلند و شگفت و زیبای وجود در صحرای ساکت و بیمرز عدم تکیه زده بر کرسی بزرگش بر بالای بلند عرش کبریای خیش از نگاهش برغی همچون آزرخش میدرخشید و بر لبانش لبخند پیروزی همچون نخستین سپید دم خلقت شکفته بود سرود نرم و معتر سفر آفرینش تورات را باخیش زمزمه می کرد و تنین آن همچون نغمه ارگ که سرود زیبای گریگواری را می نوازد در زیر رواق بلند و بلورین کلیسای عالم دور می زد و فضا را نوازش می کرد. هستی نو بود زمین را هنوز گرد و قبار خاکی نپوشانده بود خورشید نو بود و تلعلو زرین و پر جلا داشت ستارگان همه نو ساخته و صبح نو دمیده و سقف آسمان تازه برف راشته و دریاها از زلالترین های شوق فرشتگان پاک حریم خداوندی لبریز شده بود هنوز کمترین لکه مرگی، خراش ویرانی، سایش فرسایشی، چین اخمی خودورت غمی، التقاب نیازی، اضطراب گم کردنی، غم از دست دادنی، حسرت نداشتنی، رنج نبایستنی، پلیدی مسلحتی، آلودگی فهمیدنی، دیواری ضرورتی، مرزی و بندی سایهی، چالهی مالکیتی، حکومتی قانونی بر چهره پاک و صمیمی و زیبای نوزاده هستی ننشسته بود. آسمان تماشاگه خدا بود بر زمین پرتو لبخند مهربان خدا همچون نور معصوم محتاب تابیده بود و فضا از نخستین دم او در آرزوی فرزندی خویشاوندی آشنایی پر از هوا شده بود هوا هوای خداوندی بود در هوای همانندش نخستین روز بود و زمین گسترده و آسمان برافراشته و قندیل مهر و شبچراغ ماه بر سقف عالم آویخته و دریاها لبریز و های ایستاده و بادها در پس ها منتظر فرمان و ستارگان بر سینه افلاک میخ کوب و ابرها جا به جا در آسمان چشم به راه باد هستی همه تن چشم چشم در لبهای خداوند دوخته هستی همه تنگوش، گوش گوش به فرمان خداوند بسته ذرات بر جایی استاده منتظرند ناگهان تندری در اندام عالم ترکید و لرز بر کائنات افتاد زمین و آسمان و هر چه بود به حرکت آمدند تندر فرمان خداوند بود زمستان پایان و سکوت می گرفت و دو پار ابر از دو سوی آسمان به حرکت آمدند شلاق ناپیدای نسیمی شوخ زده آن دو را به روی هم میراند. دو پر ابر یکی تیره و گرفته و ابوس بر چهره‌اش اخمی تند و در سینه‌اش صاعقه ها و تندرها و رعدهای دیوانه و مهیبه به بند کشیده بیقرار انفجار و دیگری همچون کبوتری سپید به لطافت خیال دخترک معصومی در بستر ناز نیم شبان که سیمای تابناک و نیرومند پدرش را که فردا از سفر باز خواهد گشت در رؤیای شیرین یک نیم شب تابستان می‌پرورد سبکبار همچون روح پارسایی که هنوز به اندامی نیالوده است لطیف همچون روح مهربانی پاک همچون قلب روشنایی، سفید همچون سول، سمیمی همچون آشتی، سبک همچون نفس کشیدنی پس از گریستن، روشن همچون دیداری پس از بازگشت، زیبا همچون، همچون. همچنان پار ابر سفید گوشه آسمان در نخستین بامداد شسته خلقت. دو پار ابر آرام و خوشاهنگ به سراغ هم آمدند ناگهان برغی زد و قهقههٔ دیداری و دو نیمه سیب سقراتی یک سیب شد و باریدن گرفت و نخستین بهار آغاز شد این نخستین روز زندگی مشترک این دو بود بدین گونه ای پدید آمد و پیوندی بسته شد و زندگی آغاز گشت آسمان بام خانهشان بود و زمین صحنه خانهشان و بر دامنه کوهی کناری نهری آشیان گرفتند. هر نخستین پی که نسیم بامدادی گیسوان زن را برمیاشفت و همچون کودک شوخ تنهایی آن را پیاپی پی بر چهره وی میزد و بر چشم و بناگوش و گونه و لبش میکوفت و بر صورتش میافشاند و میریخت تا بیدارش میکرد. زن بر می خواست و از آشیان بیرون میآمد و بر درگاه می‌ایستاد و در برابر نخستین تبسم صبح نماز میبرد و بال زنان از شوق خود را همچون مرغابیان بامدادان بهاری دریا در رود می‌افکند و شست و با آنگاه که پوست اندامش در زیر نوازش انگشتانش از پاکی به صدا میآمد. از رودخانه باز می گشت. پوست نرم و مخملین سامیریوس ماده را که مرد در جنگل دوردستی شکار کرده بود برتن میکشید و به درون آشیان باز می گشت. همراه نخستین عشعه خورشید صبحگاه که بر راه تاریک و دراز قار میافتاد مرد هنوز خفته بود و کوبه نفسهایش نزدیک شدن بیداری و پایان عمر خواب را حکایت میکرد. زن کنار بستر مرد که بر روی خوشه بلند و زرین زررت وحشی آرمیده بود می اصداد لحظه در او خیره می‌شد و گاه لحظاتی و گاه این تماشا بسیار به طول می انجامید. زن این فرصت را سخت دوست می داشت. او مرد را بنگرد آزاد راحت آنچنان که می‌خواهد، چندان که نیاز دارد و مرد بی خبر با نگاههایش او را نفهشد، نیازارد، مقید نسازد، به گونه‌ای بودن وا ندارد. تنها در این لحظات بود که او می‌تواند مرد را به تمامی ببیند، بنگرد، آزاد، مطلق. در بیداری ناچار بود نگاهش را تنها به چشمهای او بیفکند، با نگاه های او درامی زد. در بیداری او را مینگریست که او را مینگرد. دیدن مرد را مینگریست و اما حال خود مرد را مینگرد. در این فرصت اندک و راحت و بیدرنگ و مرز و قید بود که زن مرد را مینگریست. گریست همچنان که در تنهایی دور از او به او میاندیشید او را به یاد می آورد و حال به او میاندیشد و او را به یاد می آورد و تصورش می کند و مرد در این حال در زیر چشمان وی بی, بی هیچ جنبشی حضور دارد مرد تنها در این لحظات تصویری در زیر موج نگاه های مسلط و حاکم وی تسلیم تسلیم بود رام آرام خاموش فارق بیخبر غیبتی بود که در برابرش حضور داشت و همسرش را آزاد میگذاشت. تا با نگاه های جادوگر و تشننش هر کاری را که بخواهد با او بکند. لبهای مرد آرام آرام به لبخندی سیر و کشدار و سنگین باز میشد. لبانش تر میش و برق میزد. لبهایش آرام باز میشد. گویی در برابر لبخند مقاومت میکند. چنددان که پلک‌ها نیز پیش از پلک به خواب رفته به هم فشرده میشدند مقاومتی به شوخی، مقاومتی که میدانند دانند می مقاومت می کردند تا بشکند، چه بازی لذیذی. آنگاه در حالی که آستین نرم و باریک و بلند پوستین را بر روی صورت مرد همچون پاندولی خوش آهنگ و نرم و مختاتانه حرکت می داد، می و می برد تا سایش بر چهره مرد بر پشت پلکهای مرد برخز آید ای را به نرمی سرود نیایشی که دختر بچه فرشته ای که تازه لب به آواز و به گفتار باز کرده است و برای خواندن در پیشگاه خدا او را تعلیم می دهند در زیر لب زمزمه می کند رنج های این سرزمین را آشنا می بینم. با تو همه رنج های این سرزمین مرا نوازش می کنند. با تو آهوان این صحرا دوستان همبازی منند با تو کوه ها حامیان وفادار خاندان منند با تو زمینگاه واره است که مرا در آهوش خود می خوابانه. او هری ریست که برگاهواره من کشیدم و تناب گاوارم را مادرم که در پس این کوه ها همسایه ماست در دست خیلیش دارد. با تو دریا با من مهربانی می کند. با تو س هر صبح بر گم بوسه میزند با تو نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می کند. با تو، من با بهار می رویم. با تو من در اطریاز ها پش میشم. با تو من در شیره هر نبات می جوشم. با تو من در هر شکوفه میشکوفم. با تو، من در طلو لبخند میزنم، در هر تندر فریاد در فریاد شوق می خانم. در قغوم مرغان آشر میخوانم، در قلقل چشم ها میخندم. در نای جوی بارم زمزمه میکنم با تو من در روح طبیعت پنهانم در رگ جاریام در نبض با تو من بودن را زندگی را شور را عشق را زیبایی را مهربانی پاک خداوندی را مینوشم با تو من در خلوت این صحرا، در قربت این سرزمین در سکوت این آسمان در تنهای این بی کسی قرقه فریاد و خروش و جلیتن درختان برادران منند و پرندگان خواهران منند و گلها کودکان منند و اندام هر سخره مردی از خیشان من است و نسینها بشارت بشارتگوی منند و بوی باران بوی پونه بوی خاک شاخه های شسته باران خرد پاک همه خوشترین یادهای من شیرینترین یادگارهای منند بی تو من خاموش می شود لبهایش به لبخند روشن است اما آوای نرم آن پرنده نامریی که در هنجر پنهان دارد ناگهان گره می‌خورد. ریشه های نرم سراستین پوستین را که به نرمی تن قاصدک میماند، آهسته نرم سرشار از احتیاط مملو از کنجکاوی اما بیتاب از انتظار بر نوک بینی گوشه لب میان دو ابرو قله چانه سیب گردن او می نوازد اندک اندک آرام آرام یواش یواش پس از این بیتو برای بیدار شدن مرد بیقراری میکند گویی بیتویی همچون سایه نفرینی تعقیبش کرده است از آن به هراس افتاده است در اوج یقین و در قلب حضور نیز این سایه شوم دست بردار نیست پلکهای مرد همراه لبهایش به مهربانی و سپاس باز میشوند. کنار می روند و دو نگاهش بی کمترین انحرافی، تردیدی، تعملی یک راست به سراغ دو دوست منتظرشان پر و در هم می و سلام و پرسش و خنده صبحگاهی. گویی دیداری پس از باز گشته است آری از سفر خواب باز می گردند. و در پای چشمه جوشان فلق که می آدگاه پس از هر شبشان است، یکدیگر را دیدار می‌کنند و روز آغاز می‌شود و مرد که پیداست دیریست بیدار بوده است و به بازی چشم را بسته و لب را بسته و خود را به خواب زده بوده است تا همسرش با او تنها ماند و او نیز با همسرش تنها ماند و هر یک بی دیگری با هم باشند و در حضور هم یکدیگر را به یاد آورند و آزاد و فارغ از دیگری بگویند و بیندیشند و احساس کنند چشم در چشم همسرش ترانه نیم تمام او را دنبال می‌کند بی تو من رنگ های این سرزمین را بیگانه میبینم بی تو رنگ های این سرزمین مرا می‌آزارند. بی تو آهوان این صحرا گرگانه هار منند بی تو ها دیوان سیاه و زشت خفته هند بی تو زمین قبرستان پلید و قبارانو است که مرا در خود به کیمه کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گستردند و تناب گهوارم را از دست مادرم رو بودند و بر گردنم افکندند و سرش در چنگ خلیفه است که در پس این کوه ها شب و روز در کمین من است بیتو دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلند پرندگان این سرزمین سایه های وحشتند و عبابیل بلایند بی تو سپید دم هر لبخند نفرت بار دهان جنازه است. بی تو نسین هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار می کند بی تو من با بهار می میرم بی تو من در اطریاز ها می گریم بی تو من در شیره هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم بی تو من با هر برگ پاییزی می بیتو بی تو من در چنگ طبیعت تنها می بیتو بی تو من زندگی را شوق را بودن را عشق را زیبایی را مهربانی پاک خدابندی را از یاد می برم. بی تو من در خلبت این صحرا، در قربت این سرزمی در سکوت این آسمان در تنهایی این بی کسی نگهبان سکوتم حاجب درگه نومیدی راهب معبد خاموشی سالک راه فراموشی ها باغ پجمرده پامال زمستانم درختان هر کدام قامت دشنامی پرندگان هر کدام سایه نفرینی گلها هر کدام خاطره رنجی شبه هر سخره ابلیسی دیوی قولی گنگ و پرکینه فرو خفته کمین کرده مرا بر سر را باران زمزمه گریه در دل من بوی پونه پیک و پیغامی نه برای دل من بوی خاک تکرار دعوتی برای خفتن من شاخه ها قبار گرفته باد خزانی خورده. پوک همه تلخترین یادهای من تارخ ترین یادگارهای من سبحان حاضر است از خمیازه مهربان و دوست داشتنی دار سرازیر سراзир میشوند کودکانشان همچون پرندگان فریاد شوق میکشند و گرداگردشان چرخ زنان به کنار رودخانه میرسند پرندگان آن دیار که همه در آفتاب پرواز میکنند بر بالای سرشان به بازی در پروازند و نسیم از شوق دیدارشان در زیر گلو و گردن و بناگوششان به رقص آمدند و زمان همچون پرنیان در زیر پایشان نرم و مهربان میگذرد و آینده با دست و دامنی پر از مژده و پیغام، چشمی روشن از امید و لبی شکفته از نوید، لحظه به لحظه دم به دم از راه می‌رسد و دست و دامنش را بر سر و رویشان می افشاند. لحظات هر یک قطره شیرینی و خوشگواری بود که می نوشیدند. هر قطره را تعمی و بوی دیگر، نو به نو هر لحظه به عظمت و ارجمندی آخرین لحظات یک زندگی آنچنان که ژید می‌دید اما با آرامش و فراغت نخستین لحظات عمری که پایانی دراز دارد و انتهایش سالهای بسیار در پی لحظات نخستین سال‌های یک عمر بیست ساله آیا خلا خلعی را که بی دردی پدید می آورد نداشتند؟ آیا در جستجوی سین لام کاف لام نبودند؟ داروی خودکشی تا آنان را از زندگی بی درد، آرام، بی رنج، بی انتظار و همه چیز به کام رها کند آنچنان که هدایت می گفت. هرگز روحهای اندک و بی که در بی دردی به ابتزال می کشند. اشقهای مزاجیاند که در وسال میمیرند در پیری میپژمرند سرابها زود پایان میگیرند اما روحهای بزرگ و سرمایه دار که گنجین گنجینه‌های بیشمار در خود پنهان دارند روحهای نیرومند و توانا که خلاقند و هنرمند روحهایی که امانتدار خدایند و همانند خدا و مسجود ملائک اینان در نیل در وسال، در کام به رکود نمیفتند نمیپوسند عفونت نمیگیرند احساس هایی که همچون طلایند از آرامش از ماندن زنگ نمیزنند روحهای مسی آهنی حلبی گوشتی مردابی چونینند دو روح ثروتمند و هنرمند میتوانند برای همیشه هم را استخراج کنند هم را بسازند و این خود یک زندگی کردن است و این چونین هم را دوست بدارند و این خود یک زندگی کردن است و آن دو این چنین زندگی می کردند. هر روز کشفی تازه در عمق ناپیدای راآمیز دیگری هر روز خلقی تازه در کارگاه پر اعجاز دیگری و این چنین هر روز تازه در کار یکدیگر هر روز آفرینشی تازه در دنیای یکدیگر و هر روز سرمنزلی تازهتر در سفر به اندرون یکدیگر هر یک سر در دیگری برده و دستن در کار و چه زندگی سرشاری چه زمان پری لحظات سرگرمی همه کشف و همه خلق و همه آزمایش و همه آموزش و همه شناخت و همه آشنایی و هم هر روز پیشرفتی تازهتر. آنچنان که رسو در دهمین خاطرش سفرش حکایت میکند. در آنجا که از اهلام یک سالک تنها سخن میگوید. به دینگونه آن دو میزیستند، در یکدیگر دم میزدند در یکدیگر سفر میکردند در یکدیگر مینگریستند در یکدیگر حکایت میکردند در یکدیگر خاموش میماندند، در یکدیگر مینگریستند در یکدیگر میزیستند هر کدام خود را در آینه دیگری میدید که هر یک آینه دیگری شده بود هر کدام در دیگری دم میزد که هر یک هوای دیگری شده بود هر کدام دیگری را می که هر یک کتاب دیگری شده بود。هر کدام دیگری را مینوشت که هر یک لوح دیگری شده بود. هر کدام دیگری را میساخت که هر یک موم دست دیگری شده بود و هر کدام دیگری را می پرورد که هر یک خیال دیگری و خاطره دیگری و آرزوی دیگری شده بود. هر کدام دیگری را میسرود که هر یک شعر دیگری شده بود مرد زن را هر روز از پیکره بلورین روح خیش میساخت بر انگاره خیال خیش میتراشید و زن هر روز مرد را با لطافت نیاز خود میآراست و بر انگاره زیبایی خیش آرایه میبست و به هر لحظه در هم گرفتارتر میشدند هر روز به هم مشغولتر و هر دم به هم نیازمندتر و هر صبح به هم تشنتر و هر شام هر از هرچه آن دیگری است به هم پناهنده تر و حرفها هر روز بیشتر و دیدارها هر روز تازهتر و گنج هر روز تر و شگفتی هر روز خیر کننده تر که عشق بود و زیبایی بود و عشق و زیبایی را هرگز از هم بینیازی نیست هرچه از هم بنوشند تشنتر و هرچه نزدیکتر آیند دورترند و هرچه بیشتر مانند تازهترند و هرچه در هم نگرند بدیترند و هرچه از هم برگیرند نیازمندترند و بیشترند که روحهایی هست که پایان ناپذیرند و روحهایی که تمام نشدنیاند و روحایی که تو در توی نه تویند و صد پهلو و رنگارنگ و دنیایند یک دنیا یک عالم عالمی بنهفتن در آدمی و اینان این چونین گرم کار یکدیگر زندگی میکردند آشیانشان کانون گرم همه خواستنها بود کودکانشان هر یک یادگار خلقتی یا کشفی که آن خالق این بود و این کاشف آن و زندگی این سرشار حلول و مملو و سیر و سلوک در سرزمین های شگفت روح یکدیگر کودکانشان هر یک معنایی آفریده‌ای شاهدی از کشوری که جمعیت آن دو تن بیش نبود و چه انبوهی پر سوزن انداز نبود آسمانی که بر سینه آن دو کبوتر بیش نمی پرید بال در بال هم صفحه آسمان را در زیر بالها پنهان ساخته بودند و زمین را در سایه پرها پناه داده بودند و فضا از آن دو پر بود و کودکان و کودکان و کودکان هر یک به زیبایی ونوس به پاکی مسیح و به معصومیت فرشته و به سمیمیت راستی و به گرمی ایمان هر یک کلمهی، معنایش کشفی، هر یک نامی، نام تپشی، هر یک جملهی، جملهی حادثهی